برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خداوند مهرافرین سلام بشر پیوست با قصه و و سرکار داره و اون رو کلید گنجینه راز و رمزهای کهن میدونه دونه ها و قصه ها برای این خلق شدند که اونها رو بخونیم، بشنویم به خاطر بسپوریم و از اونها حکمت و اندرز و عبرت بیاموزیم افثانه ای رو از مردم ازبکستان و گرجستان براتون نقل می به نام افثانه پادشاه و کفاش پین دوز برگرفته است کتاب قصه از ازبکستان و گرجستان با ترجمه ای از ابوالفضل آزول دور در سرزمین ازبکستان پادشاهی به نام ولی خان حکومت میکرد در همین سرزمین ازبکستان کفش فقیری زندگی میکرد که به اون خالدار پین دوز میگفتند روزی پادشاه با خودش گفت امروز باید برم سری به کوچه یه شهر بزنم و ببینم مردم چی میگن چی میخوان و چه درد دلی دارند این پادشاه دوست داشت توی سرزمینش حکومت عدل و داد برقرار باشه و مردم از پادشاهی اون راضی باشن بنابراین هوا که تاریک شد لباس کهنه و مندرسی پوشید شال پاره پاره به سر بست و مثل یادم فقیر به میون مردم کوچه و بازار رفت و به حرفای اونا گوش داد تا ببینه اونا چی میگن پادشاه ولی خان افسانی ما از محله پیشوران میگذشت که یه دفعه صدای آوازی به گوشش رسید دقت کرد و متوجه شد صدای آواز از طرف کلبه محقری که در اون نزدیکی بود می اومد. آروم به کلبه نزدیک شد و از لای درز در به داخل نگاه کرد دید که روی اجاق و در داخل دیگ چیزی می جوشه. و شخصی هم با صدای بلند آواز میخونه و همراه با صدای قلقل جوشیدن دیگ پایکوبی میکنه و میگه بجوش بجوش پلوی من بجوش قل قل قل قل قل قل بجوش بجوش بجوش گوشت من بجوش بجوش بجوش هویج و کلم من بجوش صدای قلقل تو چه قشنگه بوی تو چه مطبوع و لذت بخشه پلوی من بجوش بجوش بجوش پادشاه مدتی با حالت تعجب همونجا پشت در ایستاد و به صدای آواز اون مرد گوش داد بعد خسرش سر رفت و با خودش گفت باید از کار این مرد سر در بیارم آره باید بفهمم چرا این کار رو میکنه بعد پادشاه با چوب دستی خودش زربهی به در زد با کوبیدن در صدای آواز قطع شد و از داخل کلبه این صدا بلند شد که پرسید کیه؟ کیه؟ پادشاه جواب داد منم شاه قریب آواره در رو باز کن به چند دست بعد در بروگ ولیخان خان پادشاه افثانه ما باز شد. در که به روی ولی پادشاه باز شد دید که بله اون کلبه یک دکه یک کفاشیه و در اون کفشاگ کهنه و پاره رو تعمیر میکنن ولی خان از مرد پرسید تو کی هستی؟ و با خودت چین گفتی پین دوز جواب داد من کفاش خالدارم زن و بچه ندارم و تنها زندگی میکنم هر روز برای پلو کار میکنم و پول در میارم شب که میشه اجاق رو آتیش میکنم و برای خودم شام درست میکنم. تا وقتی که پلو آماده نشده و میجوشه منم آواز میخونم و پایکوبی می میکنم. در زمان سلطنت شاه ولی خان من خوشحالی دیگه ای ندارم. پادشاه این حرف ها رو شنید و با تعجب گفت. مگه؟ نمیتونی بیشتر کار کنی و بیشتر پول در بیاری ها؟ پین دوز آهی کشید و گفت اه ای بابا تو این سال و زمونه چه چیزی سختتر از مالیات های شاه ولی خانه ها؟ اگه بیشتر کار کنم باید بیشترم مالیات بدم همین کاری که می برای من کافیه پول پلم رو در میارم پادشاه گفت خب حالا اگه شاه ولی خان پین دوزی رو قدغن کنه اون وقت چی؟ تو چیکار کنی؟ پین دوز پوزخندی زد و گفت: <تصفيق> شاه ولی خان چه کاری به این کارا داره؟ اصلا این حرفا رو بذاریم کنار. بیا، بیا با هم پلو بخوریم و فکر فردا رو نکنیم. بفرما. بفرما که سرد میشه. پادشاه ولیخان خان توی دلش به سادگی مرد پین دوز خندید پین دوز بشخاب پلو رو جلوی پادشاه گذاشت و خلاصه تا پاسی از شب با خوشرویی و مهربونی از اون پذیرایی کرد آخرای شب بود که پادشاه از پین دوز خداحافظی کرد و به قصد برگشت صبح وقتی وریخان پادشاه از خواب بیدار شد فورا وزیرش رو فرا خوند و با صدای بلند گفت از امروز فرمان میدم در کشورمان من همه باید کفش نو بپوشند کفش کهنه نباید پای کسی باشه هیچ کس حق نداره پینه دوزی کنه این کار ددغنه و هر کس از این امر تخطی کنه فورا به سیاچال منتقل میشه وزیر فرمان ولیخان پادشاه رو نوشت و شاه اونو امضا کرد و مهر خودش رو پای اون زد جارچیا توی کوچههای شهر برآفتا دادن مردم رو جمع کردن و با صدای بلند فرمان پادشاه رو برای اونها خوندن پیندوز خالدار فرمان پادشاه رو شنید و با تعجب گفت عجب عجب پادشاه که کاری به این کارا نداشت حالا کار من چی میشه؟ باید صبر کنم. میگن صبر طلاست. <تصفيق> پین دوز قبل از غروب آفتاب لحافی رو روی سرش کشید و تا فردا صبح از خواب بیدار نشد. نزدیکی های زور بود که از خواب بیدار شد و با خودش گفت: حالا، چایدم دم میکنم و؟ تکه هاگ نون خوش رو می و میخورم گور پدر ولی خان و دستورش بعد رفت سراغ همسایه که از اون آتیش بگیره همین که پاشو به در خونه همسایه گذاشت به یک اسکناس ده مناتی برخورد کرد اسکناسی که در چند قدمیش افتاده بود پینه دوز خالدار با خوشحالی به طرف اسکناس رفت و گفت خدایا شکر میدونم میدونم این اسکناس رو تو برای من فرستادی متشکرم بعد همون ساعت به بازار رفت و دوباره شب به ساعت تقیه پول رو آماده کرد شب هنگام شاه ولی خان به فکر مرد پیندوز افتاد و با خودش گفت خیلی دلم می خود بدونم حالا که پیندوزی قدغن شده پیندوز خالدار چکار میکنه و زندگیشو چجوری میگذرونه بعد دوباره لباس کهنش رو پوشید شال پاره پارش رو به سر بست و به طرف خونه پیندوز برافتاد پادشاه ولیخان به کلبه پینه دوز رسید از درز درک نگاه کرد دید که بله باز هم دیگ پلو در حال جوشیدنه و پینه دوز هم با صدای قلقل جوشیدن پلو آوازی میخونه و پایکوبی میکنه ولیخان خان پادشاه با تعجب زربهی مکم به درکوبید کوبید فاصله پینه دوز پرسید کیه؟ چه خبرته؟ این چه طرزت زدنه؟ تمام خونه رو رو سرم خراب کردی دارم میام ولی خان جواب داد منم شاه غریب مهمان ناخوانده پین دوز با خوشروی درو در باز کرد و گفت به به به به شاه غریب شما هیچ وقت مهمان ناخونده نیستید بفرمید بفرمین تو شاه ولی خان داخل شد و پرسید چیکار میکنی ها؟ پینه دوز جواب داد از غلغل جوشیدن پلو خوشحالم شاه ولی گفت شنیدم شاه ولی خان پینه دوزی رو قدغن کرده و صدای همه پینه دوزهای شهر در اومده تو, تو از کجا پول آوردی پینه دوز جواب داد وقتی شاه ولی خون دستور داد منم راحت دراست کشیدم و تا فردای اون روز رو خوابیدم از خواب که بیدار شدم رفتم از همسایه همسایه آتیش بگیرم که یه چایی دم کنم دیدم یه سکه یه ده مناتی افتاده جلوی پا منم اونو برداشتم و به بازار رفتم و هرچی که برای پلو لازم بود خرید شاه ولی گفت وای اگه به گوش شاه ولیخان برسه که یه نفر پولی رو که متعلق به خودش نبوده برداشته و خرج خودش کرده اون وقت چه جوابی داری بدی ها؟ پیه دوست اعتراض کنن گفت ببین شاه غریب من به جستو به کسی دیگه ای که نگفتم و اگه تو پیش شاه نری و چیزی نگی چه کسی به شاه ولیخان اطلاع میده ها؟ در این موقع پادشاه ولیخان با تواضع و فروتنی گفت من به شاه خان اطلاع بدم؟ آخه خالدار جان منو که به پادشاه من حتی جرأت ندارم به قصر پادشاه نزدیک بشم اما دوست من اینو بدون که شاه ولی خان همه جا گوش داره دیوارای خونه ی تو هم گوش داره صحبت که به اینجا رسید پولو دیگه آماده شده بود پ دوز پلو رو کشید توی بشحاب و شاه ولیخوان رو به خوردن دعوت کرد. اونها با هم پلو خوردن چای نوشیدن و آخرای شب بود که ولیخان از پین دوز خدا کرد و رفت. فردای اون روز هنوز خالدار پین دوز از خواب بیدار نشده بود که صدای کوبیدن در بلند شد خالدار با چشمای خوابآلود رفت و در رو باز کرد و یه دفعه میر میرغذب پادشاه رو در برابر خودش دید با وحشت گفت: چی چی شده؟ میر میرغذب با خشونت گفت شاخ فریخان تو را کرده یالا جلو بیافت سرت هم تکون نده و به اطراف خودت هم نگاه نکن ربیافت بیاخت زانوهای پین دوز بیچاره به لرزه در اومد و هرچی گفت من کاری نکردم منو نبر فایدهی نداشت و میر غذب پادشاه اونو کشون کشون به طرف غصر پادشاه بود شاه ولی خان روی تخت بلندی نشسته بود و پین دوز هم نتونست چشش رو بالا بگیره و اونو ببینه ولی خان با غضب گفت خب که دزدی می میکنی ها پیر دوز با تجو پرسید داستی کلیه عالم به سلامت من هیچ وقت دوز نبودم و نیستم پادشاه خان گفت اگه تو دوز نیستی پس از کجا پول میاری و پلو میپزی ها پیر گفت قربان شما پین دوزی رو قدقن کردید و من از کار و کاسبی افتادم خدا هم به من کمک کرد و یه سکه دهمناتی ده مناتی جلوی پام من انداخت همین شاه با غضب گفت همین به همین سادگی و راحتی پولی رو که متعلق به خودت نیست برمیداری و خرج پلوت میکنی اون وقت میگی دوز نیستی مردک مگه دزدی شاه و دم داره این کار تو یعنی دزدی تو متهمی پینه دوز خالدار خیلی ترسید فکر کرد حالا شاه ولیخان دستور میده سر از تنش جدا کنن اما شاه ولیخان آهسته خندید و گفت <تصفيق> برای اینکه گناهت رو بخری باید به مدت یک سال در کنار قصد کشیک بدی و پاسداری کنی پینه دوز خالدار به فکر فرو رفت و با خودش گفت خدا رو شک خدا رو ش زنده موندم خب چه میشه کرد باید از غز پاسداری کنم بعد با صدای بلند گفت قبله عالم سلام اکباد چشم من آماده پاسداریم امر امر شماست پادشاه شمشیر مخصوصی رو به دست پینه دوز داده گفت اینو بگیر و برو کنار در قصد بیست و نگهبانی بده اگه دزدی اومد فورا با همین شمشیر اونو بکش فهمیدی؟ پین دوز شمشیر رو گرفت و تا شب به نگهبانی ایستاد ولی در این مدت هیچ کس به فکر پین دوز نبود و بیچاره بدون آب و غذا. خرای شب بود که پادشاه ولی پیندوز رو پیش خودش خوند و اسب سفیدی رو به اون نشون داد و گفت سوار اسب شو و بخونت برو به این اسب جو و سه دست شب در بده که بخوره فردا اول وقت دوباره با اسب اینجا بیا پین دوز بیچار سوار اسب شد و به طرف خونش برافتاد. افتاد توی راه با خودش گفت مگه میشه با شکم گرسنه نگهبانی داد تازه باید به این اسبم خوراک بدم من که پول ندارم از کجا میتونم جو و شب در بخرم و به این اسب بدم بعد فکری کرد و سر راه شمشیرش رو پیش یه نفر استادکار گرو گذاشت و دو سکه منات پول گرفت پین دوز با این پول هر چی که برای تهیه پلو لازم بود خرید. برای اسبم مقداری جو و شبدر تهیه کرد. شب که شد، بساط پلو رو آماده کرد. در این موقع باز ولیخان سر رسید و دید بله باز هم پلو میجوشه و پیردوز با خوشحالی داره آواز می کنه. ولی ولیخان پادشاه در زد، وارد خونه شد و گفت سلام. چیه؟ باز کپکت خروس میکنه جناب پین دوز خالدار کاروبارج جوریه پین دوز شروع کرد به تعریف کردن و گفت ای شاه بری من امروز به زحمت از مرگت می نجات پیدا کردم صبح دور از جون شما میر غضب شاه منو کشون کشون به قصد پادشاه برد شاه به من بد و بیرا گفت که چرا دزدی میکنم گفت حالا سر از جدا میکنم و نزدیک بود که منو بخوشن بعدن نمیدونم چجوری شد خدا به من رحم کرد و به قلبش رحم انداخت و اون مهربون شد و منو به نگهبانی در قصد گذاشت تا شب اونجا بودم و سرپای ایستادم حتی یه نفرم نیومد که از من بپرسه تو اینجا چیکار میکنی؟ آیا گرسه نیستی؟ غذا نمیخوای؟ داشتم از گرسه از حال میرفت خلاصه شب که شد پادشاه اسبش رو به من داد و دستور داد که به اون شب در رو جو بدم. من چیکار میتونستم بکنم ها؟ حتی یه سکه پول سیام نداشتم. مجبور شدم شمشیر پادشاه رو نزد یه نفر استاد کارگ رو بذارم و هرچی که برای پختن پلوی خودم و جو شب برای اسب لازم بود خریدم شاه وری خان با دقت به حرفهای؟ پین دوز گوش داد و بعد با تعجب گفت خب حالا اگه فردا به نگهبانی بدی و شمشیر نداشته باشی چی؟ شاید دوز یه دفعه سرکلش پیدا بشه و شاه بگه باید دوز رو بکشی اون وقت چی کار میکنی؟ پین دوز با بی اهمیتی گفت فکرش رو نکن دوست من بیا بیا پلو بخوریم بعد از شام از چوب دستی یه شمشیر چوبی میتراشم و توی خلاف میذارم خلاصه ولی خان پادشاه و خالدار پین دوز پلو خوردن چای نوشیدن و باز هم آخرای شب ولی خان خداحافظی کرد و ره. چوب که شد پین دوز از چوب دستیش یه شمشیر چوبی تراشید و داخل غلاف کرد و سوار اسب شد و به قصر رفت پیلودوز خالدار اسب رو در برابر شاه نگه داشت تعظیم کرد و منتظر بود پادشاه گفت برو کنار در بایست و هر وقت دوز اومد با شمشیر اونو از پای در بیار دوز خالدار به فکر فرو رفت و با خودش گفت آخ اینم یه بدبختی دیگه حالا اگه دوز بیاد با اون چیکار کنم چه با این تیکه چوب اونو بکشن در همین موقع آدمای داخل قفس فریاد زدند دوز دوز آی دوز بگیرید آی دوز توی سرسرا دو نفر که دستشون از پشت بسته شده بود وارد شدند پادشاه به خالدار گفت دوست رو بکش زود باش خالدار پین دوز که از ترس لال شده بود حتی تکون هم نخورد با خودش فکر کرد حالا منه میکشن بادا باد, باد هرچی که پیش اومد بعد فورا شمشیر چوبی رو از غلاف بیرون کشید و محکم روی شونی دوست فرود آورد شمشیر شکست و فقط دستش توی دست پین دوز بالیم شاه ولی با دیدن این صحنه قاه قاه خندید دیگران هم به پیروی از اون شروع کردند به خندیدن حتی دزدا هم نتونستند خودشون رو کنترل کنند و به خنده افتادن ولی خالدار بیشاری ایستاده بود و از ترس می لرسید ولی خانه پادشاه که دلش به حال پینه دوس سوخته بود با خنده گفت <تصفيق> خسته نباشی پینه دوس من این اسب و این شمشیر رو به تو میبخشم فقط فقط تا کشته نشدی زود از اینجا دور شو پینه دوز که صدها بار خدا رو شک میکرد که زنده مونده به خونش برگشت اسب رو بست و به بازار ره. شمشیرش رو فروخت و از پولش اونچه که برای پلو لازم بود و جو شبدر برای اسب خرید و وقتی که از بازار به خونه برمیگشت شنید که جارچیان جار, جار میزنند که به مرحمتی پادشاه ولیخان بزرگ پین دوزان می توانند پین دوزی کنند و کفش هاگ کهنه را تعمیر کنند پین دوز از خوشحالی فریاد کشید و گفت خدایا شکرت خدایا شکرت من می دونستم که اینجوری نمی مونه بله پین دوز افسانه ما با خوشحالی به خونش رفت تا پلو رو بار بذاره که شد ولی خان دوباره با همون لباس کهنه و شال پاره پاره بر سر به خونه ی پین دوز اومد و دید بله باز هم دیگ داره میجوشه و پین دوز از خوشحالی با قلقل پلو آواز میکنه و پای کوبی میکنه ولی خان با صدای بلند گفت مهمون ناخونده نمیخوای استاد خالدار پین با خوشرویی جواب داد خوش اومدی خوش اومدی بیا که امروز اتفاقات جالبی برام پیش اومده بیا تا برات تعریف کنم بیا تو بعد ماجرا رو برای شاه غریب که همون ولی خان پادشاه ای ما بود تعریف کرد و در پایان هم اضافه کرد میبینی میبینی شاه غریب عزیز هرچی که نصیب آدم باشه بهش میرسه حالا میبینی که باز توی خونم دیگ پلو میجوشه بله اون شب هم پلو پخته شد و اونها با هم شام خوردن ولی خان گفت حالا من میرم و تو از یک نفر حکیم و دانشمند بپرس که چه کسی از ما دو نفر بهتره تو یا پادشاه ولی خان پادشاه اینو گفت و رفت افسانه پادشاه و کفاش پین دوز رو شنیدید برگرفته است کتاب قصههایی از عزبکستان و گرجستان با ترجمه از ابوالفضل آزموده هدف ها علاوه بر پرورش نیروی تخیل و تصور و قدرت ذهنی ما کمک به آشنا شدن ما با میراث گذشته و تكوین هویت فرهنگی هر قوم و ملتیه ازار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح پور ویراستار سید فری برز نور بخش. اجرا مهران دوستی صدابردار داریوش گودرزی کننده زهرا عبدالله ساده تا افسانه دیگر بدرود